بسم الله الرحمن الرحيم فصل فصله قصر الصلاة وجمعها بله موضوعين فصل كوتا خواندن نماز يا همون شکستن نماز و همچنین جمع خواندن نماز يعني دو تا نمازو در یک وقت خواندن ويجوز للمسافر قصر الصلاه الرباعيه بخمس شروط و جایز است برای مسافر شکست خاندن نماز کوتاه خاندن نماز چار رکعتی قصر نماز یعنی نماز چار رکعتی رو دو رکعت این اینو میگن قصر نماز پس جایز است برای مسافر کوتاه خواندن یا شکست خاندن نماز چار رکعتی به پنج شرط یک ان یکون سفره فی غیر معصیتین اون سفری که رفته اون مسافرتی که رفته برای گناه نباشد اگر شخصی سفری کرده تا دوزی انجام بدهد میگه در این سفر این سفر برای قصر نماز درست نیست نمیشه در این نوع سفر که برای گناه سفر کرده است قصر بخواند. پس سفرش در غیر معصیت باشد برای کاری مباه برای کاری عبادی برای تفریح که مباهه رفته باشد مشکلی نیست در این صورت جمع قصر میخواند. دو تكون مسافته ست تا عشر مسافتی که می, روی می روید شانزده فرصخ باشد گفته هر فرسخ سه میل است و هر میل طبیقه کتابی که دست من تعلیق زده اینجا باورده هر میل دو کلومتر اکثر کتب دو کیلومتر نمیزنن و کمترش میزنن بعدا گفته و برابر است دو میل با بس هر فرسخ سه میل و هر میل دو کیلومتر و برآوردش کردن با 48 میل یعنی 12 فرسخ رو این کتاب که برابر با 96 کیلومتر این کتاب در آورده ولی خب اکثر محققین و علمای معاصر میگند هشتاد کیلومتر هست شانزده فرسخ برابر با هشتاد کیلومتر هست سومین شرط برای جایز بودن شکست خاندن نماز برای مسافر و این یکون معدین لسالات ربعیتی عدا بکند نماز ربائی را نماز چارکتی باشد تا قصرش بخواند. چهار و این ینوی القصر مع الاحرام نیت قصر کند نیت شکست خاندن نماز را بکند همراه با تکبیر احرامش پنجمین شرط و آخرین شرط و الا تم بمقیم بله. بإمام مقيم إقامة اقتداء نكنت اگر بإمام مقيم اقتداء كارت بتبعية الإمام شاركت ميقونه ويجوز للمصافر أن يجمع بين الظهر والأصر في وقت أيهما شاء وجائزة براي مصافر كجم بخاند بين نماز الظهر و در وقت هر یکی از این دو نماز که خواست چه در وقت ظهر ظهر و رو با هم بخواند، چه در وقت عصر این دو تا رو با هم بخواد براش و بین المغرب و ظہر و بین المغرب و وقت ايهما اس که جمع بخواند بین نماز مغرب و نماز عشاء در وقت هر کدام یک از این دو نماز که دلش خواست یعنی نماز مغرب با باهم بخونه چه در وقت مغرب چه در وقت اشار فرقی نمیکنه این رو دارد و یجوزو للحاضری المطر، المطری ان يجمع بینهما في وقت الاولا بینهما و جائز است برای حاضر برای اون کسی که در شهرش هست برای اون کسی که در حال سفر نیست جایز است برای حاضر در وقت باران که جمع بخواند بین همین نمازها یعنی بین ظهر و عصر یا بین مغرب و عشاء در وقت اولی از آن دو نماز یعنی اگر وقت باران خواست بین ظهر و عصر جنب بخونه باید در وقت ظهر بخونه و اگر خواست در وقت باران بین اشا و مغرب جمع بکنه در وقت مغرب بخونه نمیتونه مغرب رو نخونه که به این نیت که در وقت عشا جمعش بخونه در سفر میتونه ولی در وقت در باران نه پس اینجا دو علت برای جایز بودن جمع ذکر شده یکی سفر یکی باران که با هم فرقهای داشتن که بیان شدند فصلون فصل بعدی شروط و وجوب الجمعت و صحتها و ارکانها و هیاتها. شرط های واجب بودن جمعه صحیح بودن جمعه ارکانش و حیات آن و شرایط وجوب الجمعت سبعت و اشیاء شرطهای واجب بودن جمعه هفت چیز می باشد. یک الاسلام و اسلام دو والبلوغ بالغ بودن شخص مسلمان باشه به سن بلوغ رسیده باشه سه والعقل عقل داشته باشه جهار والحریه آزاده باشه برده کسی نباشه پنج والذکورية مرد باشه زن نباشه شیش والصحه سالم باشد و مریض نباشد هفت والاستیطان یعنی اهل همونجا باشد خب شارهی آوردن میگن بهتر بود که میگفت مقیم باشد به جای استیتان بله چون برای مقیم هم واجبه در حالی که مقیم مواطن نیست یعنی منظور جزوه سکان اصلی نیست منظورمون اصطلاحات قدیمی ها وشرائط فعالها ثلاثة. شرائط السحي بوداني عن جام جمعي ستش ساست. يك أن يكون البلد مصرا أو قرية ونجايك جمعي رميقوني شهر يا قرية باشاد دو وأن يكون العدد أربعين من أهل الجمعة تعدادشون چهل نفر باشه از اهل جمعه باشن اونایی که اون شرایطو داشتن سه و ان يكون الوقت باقيا وقتم باقی مانده باشد یعنی وقت نماز ظهر خارج نشده باشد فان خرج الوقت او عدمت الشروط صلیت ظهرا اگر وقت خارج شد یا یکی از شروط یافت نشد اون موقع ظهر خوانده میشه بله مثلا اعداد کامل نبود یا وقت خارج شده بود و فرائضها ثلاثه فرض های جمعه یا همون ارکانش سه تا هستند خطبتانی يقوم فيهما دو تا خطبه که در خطبه ها می ایستد ایستاده یعنی خطبه ها رو می کند دو و يجلس بينهما فرض بعدی که بین دو خطبه می نشیند سي وان تصلي ركعتين فی جماعه فرض سوم این است که نماز جمعه دو رکعت جماعتی خوانده شود درکعت جماعتی خوانده شود و حیاتها اربع و خصال حیات جمعه چهار خسلتند یک الغسل و تنظیف الجسد ویژگی اول یا کار اول غسل و پاک کردن جسد دو ولبس الثياب البيض ثیاب پوشیدن لباس سفید سي واخذ الظفر تشيدن ناخنها والطيب واستعمال خشبوه ويستحب الانصات في وقت الخطبة مستحب است خاموش نشستا در رخط خطبة خيلي ازفقها ميان اصب واجب است ومن, ال... ومن دخل والامام يخطب هركس داخل مسجد شد در حالی که او واه در حالی که امام خطبه می‌خواند چه کار کند صلا رکعتین خفیفتین دورکت صبح می‌خواند کوتاه ثم یجلس سپس می‌نشیند فصل فصل بعدی صلاة العیدین نماز دوئید وصلاة الايدين صنة مؤكدة نمازة دو إيد صنة مؤكدة باشد. وهي ركعتان، ونماز إيد دو ركعتست. يكبر في الأولى سبعا سوى تكبيرة الإحرام دركة أبلي حافت تكبير مجويد بغير تكبيرة الإحرام وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام ودركة الدوظوم پنج تکبیر میگه به غیر از تکبیر احرام یعنی موقعی که در سجده است تکبیر میگه و بلند میشه به غیر از این پنج تا تکبیر دیگه میگه و بعدش قرائتو شروع میکنه او و بعدها خطبتین بعد از این دو تا خطبه میخواد یکبر فی الاولى تسعا و فی الثانيه سبعا در این خطبه ها میگه در اولی 9 تا تکبیر میگه و در دومی 7 ويكبر من غروب شمس من لیلت العيد الى ان يدخل الامام فی الصلاة یا و یکبرو و گفته می شود از غروب خورشید، از شب عيد تا زمانی که امام به نماز وارد بشه این نماز عید فطر بود وفي الأضاءها أما در نماز الأضحى تكبير ميجي خلف الصلوات المفروضات بعد ذنمازاي فرصة در نماز الأضحى بعد ذنمازاي فرصة تكبير ميجي من صبح يوم عرفة أز روزه الصبح روز عرفة يعني النهوم إلى العصر من آخر أيام التشريق تا آخر أيام التشريق سه روز بعد از عید ازهای همون یوم النهر میگن ایام تشریق فصل صلات الكسوفینی نماز دوتا کسوف یعنی ماه گرفتگی و خورشید گرفتگی و صلات الكسوف سنت مؤکدتون نماز کسوف سنت مؤکده است فانفاتت اگر این نماز هم فوت شد لم تقضع دیگه قضایی خوانده نمیشه و یصلی لکسوف الشمس و خسوف القمر رکعتین نماز میخواد برای خورشید گرفتگی و برای ماه گرفتگی دو رکعت في کل رکعتن قیامانی در هر رکعت دو قیام وجود داره یتیل القراءه فیهما که در اون دو تا قیام قراءتو طولانی میکنه چطور دو رکعتن دو قیام دارند بله یعنی الله اکبر که کرد و خلاص قراءتو در خوند تمامش کرد بعدا میره به رکوع از رکوع که بلند میشه دوباره قراءت میخونه دوباره میره برای رکوع اینجوری پس نماز خصوف و کسوف دو رکعتن ولی هر رکعتی دو تا قیام داره که درون دو تا قیام قراءت طولانی می‌خوره و رکوعانی در نتیجه خود مسلمه که هر رکعت که دو تا قیام داره دو تا رکوع هم داره بله دو قیام داره و دو تا رکوع یطیل التصبیح ما در این دو تا رکوع طولانی می‌کنه تسبیح گفتن رو دون سجود نه در سجده یعنی منظور در رکوع‌هاش و در قیامش طولانیش میکنه اما در سجود طولانی رو نه و یخطبو بعدها خطبتین و بعد از صلات خسوف و کسوف یعنی بعد از خورشید گرفتگی و کسوف و خورشید خرشید گرفتگی و ماه گرفتگی چکار میکنه یخطبو بعدها خطبتین دوتا خطبه میخونه طبق به مذهبه شافعی رحمت الله چون بقیه فقهای های نظر رو ندارند و يصلي في كسوف الشمس و میگه آهسته میخواند در نماز خورشید گرفتگی و یجهر فی خسوف القمر اما جهری میخواند در ماه گرفتگی بله تا اینجا کافیست